شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طایبین و طاهرین و مقصومین از کلیم به حروف به ترتیب بحث کتاب مقاسه که ما در خود تنظیم و بحث جهات تاریخی شاید میکنیم عرض شد که در کلمات روایات ما می‌کاش قیراوند را ازن رسول الله صلی الله علیه ازن شروع کنیم از سور قران. در قران محرماتی شما آمده در واقع مثل معاملات محدود مثل حرمه ربا. هللا الله و حرام ربا. بعضی از روایاتی که از قیراوند نقل شده، دا هم نواز محدود ان الله حرم ال... الله رسوله حرم المیته والخ. این طور dali یه روایت از سیغنبر نفسون اینالله دا هر اکل شیعه این حرم سمنه یا اینالله دا حرم شیعه این حرم سمنه که تقریبا جنبه قانون کلی در باب مکاسب پیدا میکنه که هر عمل محرم معامله با او حرام هر و اجرد اخت عبض مقابل او حرام ما دیگه تونجه که من خبردم از یک کلیاتی در این جهت نیامده و طبق این کلی این باز دیمیم هر معامله ای که بر حرام باشه باسده این یک قصر پس در معاملات یک حاضر پیدا کردیم معاملهی بر حرام باسد من توضیحات کافی راجع به این اینالله ازا حرم شه یعنی حرم سمنه توضیحات که هر که آنی بعد از معاصلین هم سعی کنم مسادر حدیث رو ما تکویی که هر با این آروم فرداش از کل هم شون نقطی داره، نقرد شده که در سال هشتومه هجرت در سال فتح مکه پیامبر را در دیوار کرده نشسته بودن تکیه به دیوار کرده را زن لبخندی زدن و چرا خندیدید یا رسول الله فرموندن که یادم آمد که یهود رو خداوند متعال به اصطلاح چربیه ها رو بر ما حرام کرد شون رو اینا با اصطلاح ما حیله شرعی به هم دادن. تغییر تبدیل به روغن کردن، روحن فلوخنگون، خالص شهو حرامه این روغنش که حلال نیست، این اینه اینا اینا جملو داره. جمل در اینه ان الله حرم علی الیهود حرم علی ان الیهود حره ان الله ممن علی الیهود الشهو از ایون جعلوا حاضر، جعل در اینجا نما شکره، عاق کرده روحن، عذابوها، این روحنه رو عاق کرده، تبدیل به روغن کردن اون خربی ها اونشه به پی 200 خربی 200 دنبه 200 رو تبدیل به کرده کنه بعضی هم بحث که نه اونم حرامه و درس فر... الله اليهود حرم الله حرم علیه شخون و جمل و فباؤها بعضی همون روایت ها حرم هم حرم شمنه اگر شحوم حرامه ثمن قدیمت و حرام این کلامی از پهنبر در سال هشتومه هجره جز رسونن پهنبر اصلا هر شده که در مکه بعد از فتح مکه پرمودن روشن شد که اندار تاریخی که تاریخ این جهل نوری کی باشه این روایت من عرض کردن کلن در مسادر ما نیامده کلن مسادر هم مراد ما مسادر در مسادر احل سنت هست از دو نفر صحابه نفر شده که جابر نعبدالله انساری که جابر نعبدالله در اون وقت حدود مثلا فرصوی 22 سادش بوده جابر که نعبد صدر حدیث در همون قسمت که یه یهود این کاری کرد. اون زید و نهر نکرده یه نفر بیم نهر کرده عبدالله نه عباس اگر بر فرز از آمد فرز بوده شو من نمیدان که بارد به لشکریان اسلام بوده که آن در فرط مکهی چون ابن عباس سال چار و پنج هجرت با پدرش به بچه پشتی سالهی بود آمونن مدینه چون عباس اما یه بعد از اوائل محاجره نیست بعدها هجرت فرمیدن آن سال چار و پنج هجرت و پنج پس در سال 8 هجرت به احتمال بسید که که خود عباس در فرط مکه شرکت داشتن اما عبدالله الله عباس که بچه 8 -9 ساله از 9 ساله، 10 ساله، 8 ساله از 8 ساله تا 10 ساله یا 11 ساله گفته شده. بوده آیا خود عبدالله نعباس در عباس در اونجا بوده یا نه؟ اینا الان ما دقیقا نمی دونیم. مثلا در خط مکه، خیر از حجۃ الوداع. آیا ایشون در خط مکه بوده یا در خط مکه نبوده؟ من الان دقیق نمی دونم. باشه ابن عباس اینو نقل ابن عباس نمونی که بخمبر بعد قصه یهود فرمونه اینالله ازا حرم شیعن حرم سمنه پس این یک قصه ایز اصل شاجر یهود و بعد بخمبر فرموندن که میته و اینالله و رسولو و حرم و علمیتت و الخرم این رو فرموندن و قصه یهود رو هم کردن اون قاعده رو هم نهاره کردن این حادثه کنن تو روایات ما نیامد و من توضیحات کافی کراراً عرض کردم بعضی از روالیات اهلسانه اولین بار در مسادر ما به صور کلینا مسادر حدیثی ما توسط مرحوم شیخ توصی در خلاف شیخ توصی اینها در خلاف نماره کرده بعد شیخ توسی ملالو حرام و شیعن و در خلاف از خلاف به بعد آمده ولذاب به این احسان گفته شده که شهارت جابره جابر جابر نیست بحثه ای کرده اصلا یه حدیث مید. نسبه ليشين صدرشم نیست اصلا این تسیه یهود و این زیت کلا در روایات ما خوب دقت فرمودید وقتی این روایات یعنی کتب مثل کافی و فرید این روایت خودمون اسامی خودمون کلا موجود نیست بله بعد ها از مصادر آمده آمده. معلومه که بخیال نقل کرده از مصادر عامه اولین اینکه چه که خیلی از این نصوص رو از مصادر عامه نقل که قبل از ایشون کسی نقل نکرده که نهار نهار بلند گفتند هموارند نه در کتاب نهایی خودش فرنده باشه در کتاب بنو این تا یه روشن شد درس بن سمت دوم بعد ها فقهای اهل سنت تدریجا آمدند یه عناوین دیگری رو هم پیش به عنوان اولی که در رسولین بهات ابن باز دایجوز و بیول حرام ان الله لا حرم شیئا حرم سنه و این نسخه کتاب النرباز هم روایت النرباز هم دو نسخه لاش. یه نسخه نسبتا مشهور کرد ان الله الا هو و ما یه نسخه البته سالی بحث داره پیش خود اهل حدیث که اصلا ریساله برعکس بکنین توی بحثشون داره ان الله الا هو و ما اكل شيء توی این مسئله و در دایره اسلامی بحث کنیم معنی باز کجا برمی‌گردیم بحث می‌کنیم از دایره وارد نشده این راجع به این قسمت بحث قسمت دوم بحث خب طبیعتا احسان بحث ها در باب محاملات پیش آمد احساس ده حرام نبود مثلا میته نجیس بود بحث میته تو روایات بود که انالله رسوله و هر رما المیت یا سمن المیت هم که تبدیل بود این داشت احساسو نچون قاعده به قیاس بودن ببینی نجیس هم لایم زبیقه ها اگر دوباره بحثش ندارم قالوا لا اون يونس اما می و خند نص و باقی یاسن این هم دو تا قاعده لا يجوز بيع النجيس البته لا به هیچ شک روایت نداشتن اهل این شد دو این قواعد هنوز متناثر بود بحث بحث سوم که آمد بحث این بود که شون قرآن هم بلا تا و لا تا و از همون قرنه اول دوم این مسائل مطرح شد در من میرم انگورم به چیزی بیشتوشم که شراب روزیم کنه تو قایه علیسانه او نمیشینه آنه بر اسم. این چی شد چند چند تشکیل قائده دار هر نوبلی که منجر بشه افراش و علیه منفع محرنه اونم لاید رویست نسته آنه بر اسم تخصم پس ما یک بحثی داشتیم منسوس به برهیش شیاس به برهیش استنبال به صورت یک اقواب کلی و قواعد کلی در واقع مقاسب در آمد این راضی به احل سنن راضی به شیعه ما فقط رواست را حضرت اغول داشتیم که این بحث کبرالی دارد من شما خیلی راضی با صحبت کردم دیگه فکرات نمی کنم از تیردم رواست را حضرت اغول بنابراین که صحابی ایسا در قرنه چهارا موده و این سالهای مثلا سی سد و چه بوده تا سی سد و شست و هفته هشتیات بنابراین بنابراین که در, ایشان در بوده این روایت که جایی موجود نیست در مسادره یک قسمت خیلی کچی در دائم آمده که دائم هم همزمان با ایشانه سی یه هم پیش از مقدار داره این در شه قرن رضا مری او حضرت ایشان شه قرن رضا حضرت ایشان مثلا به هر حال شواهد نشون میده که این روایت عثی داشته اگر این روایت ثابت بشه خیلی به درد عوام مناسب می تو چون خوبی این روایت قواجد کلی داره مثلا چون این روایت به اون نجس داره دیگه ما نمیخواد به اون نجس است قیاس در بیاریم حرام داره اعانه بر اسم و این حدیث حدیث جاهده بقود از که بسیار حدیث بزرگوار و شریف و نفیسی در حدیث ها روز و از کردم مثلا مرمون سید قدس الله مرسی میفرند امارات صدق برشی دید بره مرمون مصطلح خوی تحلیق کجا امارات صدق داری؟ این هم حدیث مقلق است و زنیوهای عجل قریب داره مرمون شده داره اینا کجا امارات ام مخصوصاً موارد داره که یه تقوی ها کسی بشن رده مثلاً در این حدیث نگهداری نجف هم حرام که ما از که این حدیث از این در خیلی وقداری الان هم در دنیای خارج اشیاء نجف کسی نگه نمیان تو بیمارستان ها، آمپوله های شتیر. خون، بوق، اشیاء نجف کسی تو خونش نگه این به ما امن امنان نگه رو دهیم محفظ این راز این که مثلاً اصطفان برد و اتاقاش نگه و این دباید داره که مجاسات حیان ندیسته حتی امسا که جایی دید نه خیلی برونجی هیچ چیلی که ندیست شد چیزهایی که محصود شارعه باید از تمام مظاهر زندگی ما ترد بشن این حالا بخویم یک کمی آخونی گرد سوار بکنیم مثلا حرمه علیکمان میتر این حرمه مختصر اطلاقش محرومیت انسانه. شما از تمام شغونی که به در برمیجرده محرومی این نیست که فقط خوردن میت حرام باشه نگه ندارید به این از به محروم از هفر محروم. محروم از نگه دارید محروم از استفاده محروم مخید نوره یک شکلی بذارید مثلا خمی بشت دارید باید نگه رو دارید تو کنید نماز مخید کنید با کسیش محروم مثلا به بدنشون تون برخورد کرد محلوم. این محرومیت بکشه تا اثبات نجاست محرومیت اصلا شما در زندگی در تمام شماع زندگیتون از محرومی از خمر محرومی که یکی چیزم مطلب شما از از حدیث تا هفت وقت بسیار نکات کنی و دریب استفاده میشه که شاید جاهاتی بوده که اصحاب زفت نشدن در حال قطعا شواهد تاریخی داره حدیث و نقصهی داره که از کردن صابقا چرا رنگ بازار که این تفریصا میکنن هیچ روایت مشابه و رو باید نداریم این روایت برای اولین با کل مساره مالی رو در زندگی شخصی نسان به دو برسیل میکنه در بر برسی میکن. یکی درامه چجور مال باید در زندگی شما وارد بشه دو هزینه دینه با باید کردش میکن. یکی مصدر اموال، یکی مصارف اموال. یکی از انتیاجات این هیچ حدیثی میگن از اصلاح کردن. هیچ حدیث دیگه‌ای دیگه دیگه. ولو مثلا به یک صورت اجماعی تنها حدیثی که مصدر اموال و ثواب نشه قرار بدیم که شما از ثوابمون که اموالی در سین ولایای فاجاراستون. 25 شان خزینه در 25 مورد مصارف اموال انصال بزید در هر دو جهت حدیث می نزید. به هر حال انگل حدیث ساحب الوحول خبر بشه خیلی باب رو باز می‌کنه که خب به دا حدیث سندی و تاریخی مشکل دارد من این توضیحات رو عرض کردم و اونجا عرض شد که مرحوم شیخ یا شیخ محیط مثلا بایتن لایجوزو به یکون حرام لایجوزو به یکون نجد و یه در موارد هم به صورت موروی هستن این توی مکاسب ما بود تا صاحب شرایط مرموم صاحب شرایط که در اینان فوقهای اهل سنت هم اینجور نداریم این صاحب رو بسید من اینکه ایشون برای اولین بار ازمت محقق خیلی بر این صاحب در هم جمع آوری ایشون برای اولین بار آمد مکاسب محقق رو منخصم کرد در پنج عنوان. هنچه ایشون دار برای مکان سال مهر قبل اصلا قبلشان بود مفرداتش بود. مثلا دعای زبیه آلات الملائی مثلا. اما اینطور عنوان انوان اولیشون به انرژی عنوان دوم مثلا ما یو سختن در مناطق مهر میشن. سال ما در مناطق مهر میشن. سال مهر ما یو سختن در مناطق مهر میشن. سال مهر میشن. پنجم واجه ها اخذ قجل دارمشن پنج عنوان مرحوم صاحب شرایع قرار دارم و بعد از ایشون هم انصافا اصحاب همین پنج عنوان ایشون رو شرق و تحصیل دادن بیان کردن نیجم رو همون شیعه درباره درباب تحصیل مکاس و محرمه کار جدیدی نکرده، همون پنج عنوان صاحب شرایع رو گرسته الان در حاضر بحثی ما توی مرحله چهارم هستیم یه نور چهاران که محرم فی نفسه هست. این محرم فی نفسه ارز کردن یک گفتن یک نقطی است؟ اصلا انتجام قانونی همین. اگر قانون آمد گفت فلان کار حرامه یعنی اخذ اوجه درش نشکن. انتجام قانونی همین یک خودا بود. ما مباحثشو متعرض شدید. دو اینکه که گفتن از پیغمبر هم نفسده این اللہ داره حرموشه. این حرموشه همینه اونیش به طور کلی درش وارد شده فقط همون قسم چارمه اون چهار دسم دیگر به عنوان کلی از پیغمبر نداریم این قسم چارم رو به عنوان کلی داریم کاری که مرموم شه به دردسم انجام داده که در شرایط نیامده تقسیم این محرمات به حروف هجاییه مثلا علیه بازها همجور از فیلان در حالت تصویر رو خوندیم فیلان به تطفیف رسیده بودیم که کم کردن به اصطلاح کم کروشیم و بعد فیلمش آقا تنگیم بحث تنگ تطفیف رو ما یه نوار آیاتیش آیه که داره خوندیم بردیدم برای اینکه که بحث بشه سریعا یه دوره دیگه این بحث از اول شون میکنیم از سر همین نقطه یک الان در بحثی گفتیم مثلا در بعضی وقتا در احکام رسانه احکام در کتاب در احکام امم سابقه آمده هر در احکام امم سابقه اومده حالا بر آیاتش می اما اونی که در ظواهر به حساب جامعه اسلامی آمده همین سوره معروف متخلفینه ویلٌ للمتخلفین الذین یذکالوا و الناس صوفون و اذا او و وزنو هم یخسرون البته یه وقت این سوره مبارکی در مکه نازر شده یا مدین یا بین ما شواهدش نیخوره که شواهد تعبیلش با آیات مکی نیخوره خیلی بارد این بحث نمیشن یعنی تعابیرش و مثلا نحوه بیانش با آیات مکی در آیات مکی وقتی صحبتی از یک خوفه هست بیشتر میره روی مسائل ملاکات و ایمان به خدا و یعنی اون چهره کلی عذاب الهی و معاد و قیامت و اینها اما در آیات مدلی نه بیشتر هم، مثل از سال و سال و ایدی همون. اون جزاهای دونیوی و جن بیشتر یعنی به عبارت اخراب در آیات مکی لسان جن بیشتر همراه هست با انزاد چون در بحث قضی ها مرز کردیم آقا این زار عبارت از بیان حکم جزائی است چون ما توضیحاتش در بحث آیه نفر بخشیم چون وقتون کمه مناسب نیست سیری اجمال عرض کنیم ما از کنیم قیمان حکم قیمان حکم انشایی به این است که موضوع برای حکم جزائی باشه شما نمیتونید حکم انشایی جرد حکم جرد بکنیم بگیم یه نوع جزام هستن باید مثلا اگر مجلس جلق قانون کرد که مثلا ساختمان ساختن بدون مجلس، بدون پروانه ممنوعه. این اگر همیز رو ممنوعه هیچ ممنونه که هی جزایی برای خردان حکم نمیشه این باید این جزا رو قرار بده که اگر کسی بدون پروانه ساخت این کار میشه زندان میشه خونه شراب میشه جریمه نقدی فرز مثلا حکم بدون جزا نمیشه قیوان و حکم است که مشتمل برای جزا باشه یک نهر جزای، حالا اون جزای داره واسی که جمه بس یکی از راه هایی در فقه ما هم متعارب بودر فقه هر سنن از راه جزا تشت و حب میکنه. از راه اون جزایی که متعارب میشه ما تشت و حب بکنیم مثلا کسی که این کارو بکنه در برزخ و فشار برزخ میاد از اون تشت که این حب موجوده کسی که این کار رو این کار در برزر مسئله یک انسان بسیار زیبا پیش اون و همراه اون خواهد بود یا در برزر یختر همون بابونه در جننه. یا در اتجامت نزدیک مثلا خانه رسول الله از خود جزا تشت و حکم میشینه خود دقیقه چون یک تراوتی ما بین حکم جزایی و حکم جعلی حکم انشایی وجود داره اون ترابطیش که احکام فکریفیه اصلا سر و حکم و وقتی اینکه حکم مولوی مراد ما از حکم مولوی این که اصلا حکم مولوی هر حکمی که مشتمل بر نحی از جذا باشه مولوی اصلا مولوییت حکم اشتماع در جذا هست بقدر می این میار مولویت هست تا جذایی نواشه نیست. ولی ازا ما از جذا کش رو حکم می کنیم بقدر میکنم؟ اما یه نکته هست و اون این مثلا در سوره در آیه نف داره ولیون در رقاب ما هم اداره جو الیهم این هزار در اینجا این انذار آمده له هزار. ولیون درم یون درم این چی؟ خوب درست می‌کنی؟ یون این چی؟ که آزاد نیست، اگه دوستی که داشت نمی‌برد. این اگر این باشه، از اشیایی نه بپن اون هزار باج میشه. یعنی شما اگر یعنی تکریف به انزاد ثابت میشه اما ممکن است ولی اون زبو هم ها کلیات شریعت ها بگن. بگن مثلا بگن اسلام و شریعت اون دین است. این مثلا الهی است. این در دنیا سعادت انسان در اخراف مثلا در, آ... در مراحل بردر چین آثاری داره در مراحل قیامت چین آثاری داره اینجا شما جزا رو میگیم اما جزا در یه چاشور کلی که شما در روزه قیامت بسن در حضاب خالد هستید، نمیگه اگر جزی که دستتون دستت رو میبریم. این چون در زیر آقای نفس نگفتنه میدونم من اشاره کنم در سو بسود. آیا انذار یعنی همون حکم تطریفی جزایی گفتنه این رو روش حس بکنیم چون نگیرد که حروس کرداشت ما معتقلی دردگاهی در قرآن انزار اهمه انذار خصوص حکم جزائی نیست این چون مزده های آیه نفت کافی من برای خبر خبرواهد توجه نشده به نظر ما این استقلال با آیه وقتی درسته که مراده از انذار حکم جزایی مترسته بر کل تکلیف باشه به قسمو کنیم اگر این باشه ممکنه خبر خبرواهد حجزی چرا ملازمه شده اگر چون این مبلدت میاد یه ایوه هنگه دوزبی نکنید چون خدا باید دوزبی لسل میبری این لعله هم یهزرون دزدی نکنن چون اگه تران دستشون بریده میشه اگر اینجور معنام کنی دستشون بریده میشه یعنی اون حکم جزائی با اخبار واقع ثابت شد اگر حکم جزائی آمن طبیعتاً چی بار میشه طبیعتاً حکم امتقیم ثابت میشه دیدین که حدیث من بلغه به شمستو که همین من بلغه او شی امن ثواب علامنه کان له ذالک ثواب ببینید دقت چرا از ازش علاقمند اینه که استفاد کن استفواب استفواب مثلا علی کوی استفاد عمل و اثبات به انبیات که از رباطه با قص انبیات اینه اگر انقیاد باشه انقیاد حالت واحده نفسانیست دقت بکنید شما ممکن است یک روالی به این کار کردیم یک درجه پیش یدگاه داریم. یه روواگر این کار که دنیا خوب میشه یه اگر این کار کردیم مثلا 20 درجه در برد دراجات روالات مختلف سواقی در روایت اگر نکته نقطه امتیات باشید پس نجات در همه پس تیات د پست امتیات یه ق عادلی در. همی. اگر روالت باکان لحات سوواکان لحظ سوواون، ری مادر خان له مو نکر تاوامو این را که چی به حال ثواب مصرحه اگر حسنم زیاد <تصفح> بود یکیه نه ثواب مصرح از ثبوت ثواب مترهونده اثبات استفاض میکنه نو خیر فنی همین نوثیش کار این حاله کلی در تخفی میره به کار دیا از جزای اثبات تخون مولدنی میکنه چرا چون اصلا حکم اولاری و, و حکم نیست که موضوع احکام جزایی دید و رضا ما هم شرم نیست. من در یک پرست که به کل احواته ی آتی بگاه بکنیم ما حدیثتر احکام اینجوری معنی کردیم برای اون شیخ مخالفت این شیخ مخالفت باشه اقوبت که حالا شیخ فتح به احتران شیخ معرض رضا صحیحش جزا نه حکوپت، حقوپت، حقوپت کیون بنده؟ چون از مشای خروب صوری مثل مراد رفع یعنی شما در این مراحل جزا نداریم، کیفر نداریم این از کلام، آیا رفع جزا در اینجا مستلزم رفع حقوپ واهن خب، در اینجا این حدیث فقط نادر است مقام رفتق جزا شما در مقام جزا این حکم رو ندارید بنای اصحاب به این شده که حالا بنای اصحاب در یک تنگ موردشه که هم حکم واقعی برداشته میشه مثل نسیان اما در مثل فلسیم ما رایه هم حکم زایییست از دیگر نه حکم به حال خودش محکوزه فقط مرحله به اصطلاح عقوبت در مرحله به اصطلاح به اصطلاح پس مطله حقوق بر مطله تکالیک تکالیف جزایی میشیم. توضی بحث داریم اینجا در محل خود حالا دقت زمانان برگردیم به خود ما ببین ما در قرانی که گفتن چون این بحث کار نکردن آیم این بحث بسیار بر می به نظر ما در احکام شناسی از قرآن خیلی برای شما مثره. در قرآن آن که میشه بر احکان بار میشه تو تو احکام مدنی تو آیات مدنی، بیشتر اون جداوت از کثر وارد میشه به نماز غالب این یحاربون الله علیه و مایصون سر از فسادان فقط ان یخشوا در آیات این ما چی اون جنبه انذار اون کلی یعنی ناظر به مقام قیامت و معاد و اون آثار کلی ایمان به شریعت وارد میشه به نظر ما نمی داشتم، شما نمی داشتید موضوع خاصی نو ما به نظر ما این خودشه که از شواهد این تیم آیات جز آیات مکی باشه یا مدنی باشه. عبارات خود صحابه و غیر صحابه در این جهت مختلفه. به هر حال اگر قبول بکنید که آیات در مدینه نازل شده، اگر در اما چون میگن اول ورود بوده حتی ماده این مکه و مدینه بوده اول اول ورود مدینه بوده این خب پیمنبر وارد مدینه شان درش این ها بعض پیمانه هایش رو مرتب نیست. یه نقطه تاریخی نه این نقطه کاملا ثابت یا میگن اهل مکه اهل ورزم بودن اهل مدینه اهل کهی بودن من این ها رو سابقا اهم کردن در از نیگه ما این اما است. در زندگی ما برای اینکه با اشیاء به اصلاح اتنی انتفاق میکنن در خودهای مختلفی داشتن. در این از این زاویه که مثلا وقتی میخواد معامله انجام بدن یکی مخواد خودش قضا با خودشی میگوید از درخ میچینیم میخورد هر چی مخواد لازم نشتایش هر چی مخواد کهی کاری مبونده. در تا آمده اجتماعی آمدن یک اعتبارات بقرار دادن. این بی بعدی از اشیاء رو نظر کردم به که این چه مردار سنگینی داره برای سنگینی وزد دو سر مثلا اگر گندم نیم پیرو باشد آن سیر میکنه حالا مهادی یک کاسر فرکنه یا گندم سباک ماشی یک کاسه نسیر فرکنه خیلی هر جمع رو نگاه نکنه آمدن در از اشیاء بعد سنگینی و به قوله اولیش کتابات کتابات در اینجا نهی سنگینی، اگر تنگینی اشعار رو بررسی کردن و موزون یعنی هر چیزی که در اعتبارات اغلایتون مقام تعامل لحاظ تنگینی شده باشد از یک طرف دیگم در تنگینیم تنگی کردن به اشعار که نزیه خودشون که عرب ها بیشتر رو دن در دنیای قبل از اسلام. الان در دنیا جدید رو گرام رفتن مثل لحظه گرام لفظ یونانی قبل از سام موجود بوده در خوده کلمه قدیم هم هست به این حساب هست که گرم چیزیه سلام ما داره هر گرمی این یک به حساب آب مخدد مختصر مکعب و آب مختصر در چهار درجه حرارت مختصر کیم املا نشده 4 آب در چهار درجه در کمتر از چهار بیشتر وزنی میشه در خصوص چهار درجه هر آراز پیدا که هزار را از این گرام به حساب و تلا گرفتن بخواست که تلا تا اونجایی که بشر میدونیم مالایی فرزایی دیورانیون میدونیم اون تا اونجایی که بشر ما خبر گرمیم به اسطلاح پر اومتنین یعنی به لازه اوم عم پر سال عمر این که مثل آهنه که دو زنگ میدن اما فلزه طلا یه فلزه فران روی سیزوگیا خراب نمیشه لذا اونزای رو تلا قرار دادن توی یه موزه دور فرانسه که یه هزار گرمی از تلا دور و توی یه محفظه شیشهی یه خالیت هوا نگه داده این مانی اگر اختلافی رو در اون مرجع رو در اوجه قرار دادن هر از هم برای این که وقت از راه ماشه هست از راه به اصلاب درنج هست از راه عدد هست من نمیم که منو بارد این بحث بشم از راه شعیر هست بیشترین جسمه دیگه در دنیای عرب و در فرنگ اسلامه شعیر می کنم اون من باید و از یک طرف دیگه هم آنم مسئله حجم رو مطرح کردم یعنی یک درشا رو به لحاظ حجم مقدار حضای رو که میگیره. می گیره اسم این رو که, هجم رو این دو که ما به حجم رو میگیم. پس اشیاء یا به لحاظ وزن و تنگی میشون اونا موضوعن یا به لحاظ حجمشون بررسی میشن اینا رو مکی اسم گذاشتن یا این گردین خارج خارجی یعنی اون تفاوت خارج حساب نمی کردن معدود محدود میشد مثلا گرزو مثلا خاصون خاصون تخم اینا رو معدود حساب میکردن به نظر معدود که از کی و بس محدود شده اهل مکه همه چیز رو وزن فکر نمیتونمشا داشت چون مثلا چیزهایی در زندگی بشر هیچ وقت موضوع نبوده مثل آب هنوز هم که هنوز در هیچ که هزارارت بشر منگرگر دیگه باشه ولی آب هیچ وقت به اصطلا موضوع نیست چون هیچ وقت در زندگی بشر آب خاطر آقای که درها مقتر میکن آب خاال هیچ ر زندگی نبده. نظ مثلا در خیلی از شعایران به ابق سنجان آب سنج یا ساعت. یک ساعت مثلا ابو تصنمال این بود بیا بیشتر که الان 1 متر مکعب مکرم. حساب می. متر مکعبا کیه؟ تابون کردن. هر چی که هر رو نگاه بکنه این میشه مکی پس اهل مدینه معاملات رو با کیل انجام میدادن. اهل مکه باور. مثلا در مکی بودن دو کیلو گندم فروختی. اهل مکه مدینه پس این با چوب با تخته یا چارگوشه درجه مکعب بود. اینو کار میکنن. گفت بود یعنی به عباده دیگر آمدن از کهی استفاده کنه و ظاهرا در زندگی بشر اصل به لحاظه تاریخی کیه فوقهای ما نوشن اصل وزن کهی پرده لیکن ظاهرا به لحاظه تاریخی اصل کیه و در روایات ماه همین همینه اصل آمده در بعض از تقبارات حرم رویجیم کفتون به نهانیسه این اولین کیه که کیل یعنی دیگه است و بعدش موده، مود یعنی مددلیده میگرد که عربی از مددلیده گرفته شده در عقیق دو کف دو سه کف رو پده هم بگیم این هم حجمه هم کف حجمه که کی میشه هم مزده حجمه که بعد مثلا شهار مزد یک سا به الاخر بس اما بحثی بسیار لطیف و شینی در ایجاد ان شاءالله که خداوند صلی الله علیه و آله بهش کار رو مثل زکات اینها اونجا مطرح شد خیلی بحث به حساب مد و خاش از همون قرن دوم اختلاف ایجاد شد به این اونها ببین چه شانه طولاتی داره اهل کوفه یه مقدار مدشون بزرگتر از مدی بود که اهل مدینه قائل بودن اختلافی بود بین ابو یوسف و ابو حنیفه ذکر هم مالکی بن انس از یک طرفو طرف من نمیخوام در تقریب این ما هم حق را با ما گرفتن به خاطر این 150 سال 140 سال که باید سهی همبر بودن یه نقدار اون مد و اون حجم را بزرگش کردن چون مئیارهای رسمی نداشت مد زمان رسولا یه نقدار کچیتر بود تا مدی که بعدها در دنیای اسلام متعارف بود شرح این ها است. الان جاش اینجا نیست این در یه وقتی با توضیح کافی داده بشه مرگومه از زیادی حتی از علما و موس مجی و دیگران زیاد نوشتن راجع به اینها تحقیق کردن به نظر من کتاب مرحوم سردار کاویری غایت التاریخ مقا... النواظین النواشین نکایی موازین... به نظر من نیاز همشون دقیق‌تر در جزئیات و علمی‌تر تو ایشون به ریاضیات و افسانه اون ریاضیات خیلی مسلط بوده خیلی خوب اینها تحقیق کرده البته به نظر من ایشون یک تذکری ای هم واسه که باز بعضی از اوزان به زمان عقب که این هم برای خود ما هم حیرت آوره مثلا درهم در صدر اسلام در آثاری که داریم تا سالهای 400 و 500 یه وزنی داشت بعد خیلی مسخه هم تا یه وزنش بعد وزنی خیلی آمد خواهیم چیزی نزید یک سوم شد بعضی دو وزنش رفت بالا سالهای 600 و بعد دو رفت بالا این رو از تاریخی باید برسی تاریخیم کرد یا حالا منشون وقت بحثیم بحثنیست میخوام مخواهم جامعه ترست پس بما برین این که نوشتن که پیغمبر به مدینه آمد کیلشون خراب بود یا اینجوری نوشتن بقالا و فلسومت هایی چیزی میفروختن جنس میفروختن دوتو کیل داشت وقتی چیزی میفروختن مثلا یک لیت لیت خودش کیل های شد لفظ رسل که ما احتمالا لیت با مگرسی شده باشی یا رسل عربی این هم کیل هم وزنی ما شرکت اشتباه تایپی نمی کنیم الان در دنیای غرب نیست فقط کیل وزنی است شیر رو آب رو با ذیت میگن این فقط کیل اما در اصطلاحات ما روایت ما ردی دو تا هم کیل هم وزنیه در هم در روایت ما هم وزنه و هم نقد پوله این بالای که تلویزیون شما داره. دیر هم هم پول بوده نقد بوده که غالبا یک دهانه دینار به لحاظ به اسلام ارزش داشت. و هم در این حال وزن بوده وزنش هفت دهانه دهان دینار بوده. به لحاظ وزن بیشتر هم بوده. به لحاظ وزن باز یک دهانه دینار نبوده. مثلا همینطور که مردم سر و کله دی ترکیه داره. درست هم است. واقعا موقع دفترش میر مشکل بزرگی بود ببینون چیزه علمای ما نوشتن یا با یا با اونی که در سکه ها و به حساب موجوداتی که الان ما در دنیا داریم از سکه های دوران اسلامی اصلا انطباق نداشت حق با ایشانه چهار گرم و خرده ای یک گونه مثال بوده نزدیک 3 گرم 2 گرم و 966 یا و پنج این به اندازه یه دونه درهم بود 3 گرم میدونه درهم وزنن 3 از چهار و دو چهار و دو تقریباً دور یا سه در حضر خوب دقیق این شبیه لفظ خوند انگلیسی، پند الان در دنیا انگلیسی اینطوره هم وزن هم پوله درهم هم وزن هم پوله به حاضر پولی یک ده همه درهمه بیماره اما به حاضر وزنی وزنش مثلا حدود مثلا هفت ده همه. یک ده همه. این اشتباه پیش نیاد. به یه شهر دارم من چون این مخواه چرا مقدمات مقدماته مثلا بعضی از دو قبیه این کردن به اینکه که فقط در کهی بوده چون پیغمبر مدینه آمده مدینه کهی داشتن مثلا یک ریستی داشته مثلا اگر مثلا شیر میگرفته با اون لیستی که 900 سیسی بوده مثلا میداده وقتی خودشی خریده هزار ریستی بوده دو تا ریستی داشته ناقص و کامل یا سر لیت رو خالی میکردن چون تفصیف به این معنی رو بفتن مثلا لیت که خور میکرده یه معنی کم میکرده تفصیف یعنی این مثلا دمیغم باید تفصیف اون سر لیت سر پیمانه رو کم کردن پس اون کاسمانن نیده پر از گنگان میکرده یه دست دیگه بزیده یه نرده رو بنده این دمزنگوش رو سر کاسم کم میکرده این اسم و لذا من این تمام مقدمات بود هلذین از اکتال و ارناسه یا صوفون میگن سر بشن این که در اینجا قرآن فقط کلو آورده چون تفسیز در کلو بوده و که انصافاً این مطلب درست نیست و ازا وزنو هم وزنو هم وزن اون که پرد داره در اول اکتالو آمده در خود قرآن در اولش اکتالو آمده اما در دومش وزنو هم آمده و اداد هم او و هم یفت و